یک مسئله دیگر عبارت است از همکاری و مرتبط کردن ظرفیت ها در بخش های گوناگون که از یک دیگر خبر داشته باشند خب آیا این امکاناتی که در مبنا هست به اطلاع بقیه بخش های فعال اقتصادی و صنعتی کشور، رسیده اونا مطلعه آیا دانشگاه های کشور به طور کامل از ظرفیت های مبنا مطلعه آیا شما از ظرفیت های دانشگاه ها مطلعه که البته گزارشی که دادن دوستان میگن در زمینه ها در این زمینه ها فعال من تحکید میکنم نسبت به این مسئله مسئله همکاری و استفاده کردن از زرفیت های دیگر مثل ظروف مرتبط همه از هم استفاده کنند و این هم موجب پیشرفت بیشتری خواهد شد